هزار افسان برنامه از گروه جوان و فرهنگ نام خدا خدای می خدای ما خدای شب و افسانه سلام در ظاهر ساده و بی‌پیرایه افسانه ها جهانی پیچیده از پیام ها و رمز و راز ها نفته است کوله خاطرات همه ما از افسانه خالی نیست چه بسیار که گوش جان به افسانه های دلنشین و میز پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها سپردیم و در دنیا رمز و راز افثانه ها خواب هزار رنگ دیدیم این هفته در برنامه هزار افسان سری میزنیم به افثانه های سرزامین و افثانه ای رو به نام چماغ پیکیو ترده می کنیم این افسانه برگرفته از کتاب قصه و افسانه‌های های مردم اسپانی اثر میمسویه سویه با ترجمه ای از حسن صرف پیکیو مرد شادی بود که چند فرزن و یه زن پرسر و صدا داشت که دیگه به جیغ های اون عادت کرده بود. پیکیو پینه دوز بود و اهل اندلس به همین جهت عادت داشت هفتهش رو تپه یه اندرز قدیمی اندلوسی بگذرونه یعنی دوشنبه تعطیلی ابزار کارش بود سه شنبه حال کار کردن نداشت چهارشنبه به بلت طوفان تعطیل میکرد پنج شنبه کار نمیکرد بلت بدی هوا میمون شنبه چه فایده داشت یه روز کار کنه بله پیکی و شاد و خورم زندگی میکرد و اصلا به فکر فرداش نبود و فقط وقتی به خونه برمیگشت که مجبور میشد. پیکیو همیشه از دو چیز فراری بود. یکی دعوا و نزاع خانوادگی و دیگری کار کردن. با این حال روزی فرار رسید که کاملا مجبور شد قبول کنه آه در بسات نداره و حداقل برای اون ساعت با یست به خونش برگرده و همین کار رو هم کرد. ولی به محض ورودش بخونه زنش سر و صدای زیادی را انداخت و اونو به بعد ناسزا گرفت و آخرش هم با چوب و چماق دنبالش کرد تحدید بهش گفت پیکیو یه تنبد تا کار نکنی حق نداری پاتو تو توی این خوده بذاری و پیکیو هم در جواب تهدید زنش گفت در زیه میدم بمیرم تا اینکه کار کنم و بعد هم تصمیم گرفت بره و خودشو دار بزنه کی به سراغ همسایش رفت و تنابی از اون قرض کرد و درخت مناسبی پیدا کرد و تنابش رو به اون گره زد وقتی تناب رو گره زد صدایی مکم از بالای درخت به گوشش رسید آی میخوای چیکار کار کنی؟ پیکیو با تجب به بالای درخت نگاه کرد و در میون شاخه های درخت آدمکی دید که لباس سرخ به و با خونسرده گفت خودت که میبینی دارم خودم رو مثل پیازی که از تیر سقف آویزون باشه به این شاخه آویزون میکنم. آدمک که صور پوش گفت چرا میخوای این کار رو بکنی؟ ها؟ پیکیو جواب داد برای اینکه از کار کردن متنفرم برای اینکه از فریادهای زنم متنفرم برای اینکه بچههام گرسنه تو نمیدونی من چه وضعیتی دارم. آدمک گفت میتونم حدس بزنم چه وضعیتی داری برای همین میخوام بهت کمک کنم بیا بیا بیا این کیسه رو بگیر پیکیو گفت این کیسه چیه به چه درد من میخوره آدمک گفت با اون میتونی مثل شاهزاده ها زندگی کنی با این کیسه هر جا که بری حسابی ازت پذیرایی میکنن و هیچ وقت هم خالی نمیشه پیکیو با خوشحالی کیسه رو گرفت تناب رو از شاخه درخت باز کرد و به راه افتاد پیکیو اول خواست یه راست به خونش بره چون میدونست زنش با دیدن این کیسه دیگه کاری به کار رو نداره و سر و صدایی رو هم به راه نمیدازه ولی چون احساس گرسنگی کرد تصمیم گرفت اول به مهمونخونه این که در مسیرش بود بره و دلی از در بیاده پیکیوی افثانه ما وقتی به مهمونخونه رسید دستاش رو به هم کوبید تا صاحب مهمونخونه رو صدا کنه و فریاد زد آی! فوراً بهترین خوردنی ها و نوشیدنی هاتون رو برای من بیاریم کجایین؟ مهمونخونه دار با تردید به پیکیو نگاهی انداخت چون ظاهرش نشون میداد که نمیتونه آدم پولداری باشه پیکیو که تردید مهمون دار رو دید از کیسش چند سکه طلا درآورد در آورد و گفت اینقدر بر برو به من نگاه نکن بیا بیا این سکه برای اینه که پاهات رو از رخفت و سستی در بیاره این سکه برای اینه که هوش و حواست رو سر جاش بیاره و این سکه هم برای اینه که بهترین خوردنی ها و نوشیدنی ها رو برم بیاری زود باش و سکه ها رو به طرف مهمون دار دراز کرد مهمون دار با عجل سکار گرفت و چند دقیقه بعد روی میز جلوی پیکیو پر بود از غذاها و یه و نوشیدنی های گوبارا. خلاصه پیکیو به اندازه چند نفر خورد و خورد و نوشید و نوشید و چون سنگین شده بود همونجا خوابش بود مهمون خوندار وقتی دید پیکیو حسابی خوابش برده زنش رو صدا زد و آیسته بهش گفت این بهترین فرصته ما میتونیم این کیسه جادویی رو از کمر بندون باز کنیم و حسابی خوشبخت بشیم زن هم با صدای خفهی گفت اگه اون بیدار بشه و ببینه کیسهش سر جاش نیست اون وقت مرد گفت نه ما یک کیسه ای کاملا شبیه این کیسه می دوزیم. اون وقت بدون اینکه این ابله این متوجه بشه کیسه بیخاصیت رو به جای این کیسه ای جادوی به کمرش میبندیم زن ها؟ چطوره؟ زن با هیجان گفت وای وای وای وای وای, وای, وای. که چطب تو باهوشی؟ من همیشه به خودم میگم. تو این همه حوش و زرنگی رو مرد کلامش رو قرد کرد و گفت زرنگی منو ول کن زود باش برو و یک کیسه بدو زود باش زن هم فورا رفت و یک کیسه دوخت و مرد کیسه رو به کمر و بسته وقتی پیکیو از خواب بیدار شد فورا دستی به کمربندش برد و دید کیسه سر جاشه اون وقت با خوشحالی و در حالی که با صدای بلند آوازی رو میخوند به طرف خونهش براه افتاد زن پیکیو تا صدای شوهرش هرش رو شنید با عصبانیت از خونه بیرون اومد و فریاد زد مردک تنبل از کدوم گوری میای، ها؟ چطور جارت میکنه اینجوری بیخیال آواز بخونی و به خونه برگردی ها؟ سب کن سب کن تا نشورت بدم پیکیو گفت زن عزیز من ساکت <تصفيق> ساکت چیزی براتون رو بردم که اگه اونو ببینین شما هم مثل من آواز میخونیم بیا بیا خوب به این کیسه ای کوچیک نگاه کن پرست که های تلاسته زن با ناباوری به کیسه نگاهی انداخت و گفت وای با حالت اگه دروغ گفته باشی با همین دستام خفت میکنم پیکیو پیکیو خنده ای کرد و گفت <تصفيق> باش باش هرچی میخوای بکن من دیگه اون پیکیوی فقیر و ندار نیستم با داشتن این کیسه یه جادویی هر جا برم مثل یه از ازم پذیرایی میکنن و بعد فریاد زد بچه ها بچه ها کجا این میخوام به هر کدوم از شما یه سکیگه طلا بدم بیاین بیاین پیش بابا پیکیو بابا پیکیو یه ثروتمندتون بیاین <تصفيق> <تصفيق> بچه ها و یه قد و نیم قد پیکیو از گوش و کنار خونه اومدن و به صف ایستادن و پیکیو گفت خب حالا دستاتون رو دراز کنین تا به هر کدومتون یه سکه بله یه سکه یه تلا بدم بچه عزیز من بعد دست به داخل کیسه برد ولی اونا خالیدی یه لحظه صبر کرد چیزی توی دستش نیمد کیسه رو تکون داد ولی هیچ خبری از سکه نبود که نبود پیگو مستسل نگاهی بزنش انداخت و گفت سکام سکام باور کن راست میگم زن زن پیگو با عصبانیت فریاد کشید حالا دیگه منو مسخره میکنی الان نشونت میدم و بعد رفت و چند لحظه بعد با چماق بزرگی برگشت و در حالی که به سر و صورت پیکیو میزد گفت تم کم بود حالا ما مسخره مسخرم میکنی بگیر نوش جونت بلکه این چماق تا را آدم کنه بگیر و چند لحظه بعد پیکیو کتک خورد و کوفته خودش را از دست زنش نجات داد و یه راست به سراغ همسایش رفت تا باز از اون تنابی رو قرض بگیره پیکیو دوباره تناب رو برداشت و رفت که خودش رو دار بزنه. میخواست سرش رو از حلقه تناب رد کنه که صدایی بلند شد. میخوای چیکار کار کنی؟ پیکیو سرش رو بالا برد و دوباره آدمک سر بوش رو دید. با ناراحتی گفت میخوام خودم و دار بزنم. چون تو فریبم دادی. کیسه بلافاصله خالی شد و زنم آخ منو به باد کتک گرفت آدمک خندید و گفت <تصفيق> بیکیو تو خیلی احمقی ولی دلم به حالت میسه بیا بیا این سفره رو بگیر کافیه اون رو, رو روی زمین پنگ کنی تا بلافاصله فاصله پر از غذاهایی بشه که آرزو شنو داری برو برو ولی اینبار مواظب دزده باش پیکیو از آدمک تشکر کرد سفره رو برداشت و با خودش گفت قبل از اینکه برم خونه باید انجا نو امتحان کنم بعد سفره رو پنگ کرد بلافاصله سفره پر شد از انواع غذاهای رنگارنگ پیکیو که سخت به حیرت افتاده بود ترسید که نتونه همه اونا رو بخوره ولی با اشتهای زیاد شروع کرد به خوردن و خوردن و فقط یه دونه سوسیس بزرگ رو نگه داشت و اونو توی جیب گذاشت بعد سفره رو به کمر بست که کسی نتونه اون رو بدزده و چون احساس میکرد کمی سنگین شده با قدم آهسته به طرف دهکده روان شد بیکیو وقتی از مقابل مهمون خونه میگذشت خیلی هوس کرد که کمی اونجا بخوابه اون سوسیس بزرگ رو به مهمون خونه دار داده گفت اینو بگیر و در عوض بذار کمی در گوشه آروم بخوابم خوابم میاد صاحب مهمون با رغبت قبول کرد و گفت خواهش میکنم جناب اینجا رو مثل خونه خودتون بدونید حالا بفرمایید و راحت و راحت بگیرین بخوابین صاحب مهمون خونه بو برده بود که پیکیو غنیمت ای نصیبش میکنه وقتی پیکیو به خواب رفت مرد ساه مهمون کنه آروم بالای سرش رفت و خوب براندازش کرد و دید بله یه سفره به کمر پیکیو بسته شده فورا به زنش گفت که هرچی زودتر یه سفره درست مثل ای که به کمر پیکیو بسته شده تهیه کنه زنم اطاعت کرد و وقتی سفره آماده شد شوهرش سفره رو هم مثل کیسه گسه های طلا عوض کرد و پیکیوی افثانی ما اصلا متوجه نشد که نشد ساعتی بعد پیکیو با شکوه تموم وارد خونش شد و در همون حال که در رو باز میکرد گفت ها زن زن براتون چیزی آوردم که از این مثل, مثل یک ملکه زندگی میکنی آی بچه با شما هم هستم کجایین؟ یه سفره جادویی براتون آوردم که وقتی پهنش کنین تمام قضاها یه خوشمزه دنیا رو براتون آماده میکنه بعد پیکی و تید کنن اضافه کرد اما یادتون باشه که تمیز و مرتب غذا بخورین و مثل آدم‌های وحشی و پرخور رفتار نکنین زن پیکیو تحدید گفت پیکیو تو هم یادت باشه که اگه این بار دروغ بگی و بخوای عراجیف ببافی زیر دست من زنده نمیمونی پیکیو با اطمینان خاطر سفره رو در مقابل زن و بچه هاش ولی چیزی ظاهر نشد پیکیو سفره رو تکون داد، تا کرد، باز کرد، دوباره تا کرد ولی هیچ فاقده ای نداشت که نداشت چند دقیقه بعد پیکیو نالان و کتک خورده از خونش بیرون اومد پیکیو ناامید و عصبانی تنابش رو برداشت و باز هم رفت تا خودش رو دار بزنه دوباره آدمک سرکوش رو دید آدمک گفت تو چی میخوایی؟ دست از احمق بازیات برداری مرد ها؟ من برای آخرین بار به تره میکنم بیا بیا این چماغ رو بگیر اگه کسی ازیتت کرد یا اموالت رو دزدید فقط بگو بزن فهمیدی یا نه قول میدم از این به بعد زندگی راحتی پیدا کنی پیکی از آدمی که سرپوش خداحافظی کرد و در حالی که چماخ را به دست گرفته بود و کاملاً غرق تفکر بود به طرف دهکدَر رفت. پیکیو توی راه با خودش گفت اگه کیسه تلا و سفره جادویی دوستیده شده باشن فقط میتونه کار اون مهمونخونه داره موزی باشه اون دوستیده بهترین فرصت برای امتحان کردن این چماق رفتن به اون مهمونخونه است بعد وارد مهمونخونه شد صاحب مهمونخونه به گرمی از اون استقبال کرد پیکیو گفت ببینم من کیسه یه و یه سفره رو اینجا جا نذاشتم؟ مهمون خوندار موزی جواب داد نه ارباب نه اینجا گم نشده شما لباری که اومدین مهمون خونه ما چون این چیزایی نداشتید بله اه اه من مطمئنم نه نه نداشتید پیکیو گفت واقعا پس شما بزن بلافاصله چماق شروع به زدن مهمون دار کرد زن مهموندار که این وضعیت رو دید از ترس فورا رفت و کیسی گتلاها و صفری جادویی رو آورد و به پیکیو داد و پیکیو هم دستور توقف داد و چماق از زدن ایستاد بعد از چند دقیه پیکیو به طرف خونش برافتاد. هنوز به در خونه نرسیده بود که زنش با چوبی که در دست داشت به طرفش حجوم آورد و پیکیو هم به چماقش گفت بزن بزن ولی یه بزن و چماق تلافی تمام کتک هایی دو که پیکیو از دست زنش خورده بود در آورد زن که از فرت حیرت و خشم زبونش بند اومده بود از هوش رفت همسایا با دیدن این صحنه فوراً به دنبال داروغه رفتند و چند دقیقه بعد داروغه و دو مأمورش از راه رسیدن تا پیکیو رو توقیف کنن پیکیو با عصبانیت مونا گفت من من یک کارگر شریف هستم که دارم زنم رو تنبیه می آیا این حق رو ندارم؟ داروغه با خشم گفت تو حق نداری که اینجور بی رحمانه. و پیک دستور داد چماخ بزن بزن داروغه نقش زمین شد و معمولش هم که برای نجاتش رو بودند، بودن اون غش هما خوردن که روی زمین ولو شدن این دفعه همسایه ها دویدن و به شاه پناه بردن شاه هم یه هنگ فرستاد تا پیکیو رو بگیرن و بیارن ولی پیکیو فریاد زد چماق بزن بزن چماق یک دو و سه سرباز رو نقش زمین کرد 20 تا پنجا تا صد تا دویست از سرباز در اومدن و دیگه کسی باقی نمود پیکیو نفسی از سر آسودگی خیال و گفت خب حالا حالا یک کمی باید استراحت کنم خدا وقتی انسان طالب آرامشه برای به دست آوردن اون چقدر آخی باید زحمت بکشه پیکیو این رو گفت و به خواب عمیقی فرو رفت انگار که سال هاست خواب به چشاش نیمده و حالا ادامه ماجره رو بشنمی وقتی که پیکیو به خواب رفت سربازهای های پادشا بی سر و صدا اومدن و اونو پیچ کرد با خودشون بردن پیکیو وقتی از خواب بیدار شد دید که ایداد و بیدار توی زندانه دستش پسته بود و نمیتونست از چماقش استفاده کنه اما اون چماغی گرانبا همچنان زیر لباسش بود خلاصه پیکیو رو محاکمه کردن و حکم اعدام براش صادر شد موقعی که میخواستن اونو به دار بزنن پیکیو گفت من یه خواسته دارم دوست دارم قبل از اینکه به دار را بیخته بشم دستام رو باز کنین تا کمی دعا بخونم جلاد تنها رو باز کرد و پیکیو شروع کرد به دعا خوندن و بعد یه دفعه چماغش رو از زیر لباسش درآورد و فریاد زد بزن چما بزن، محکم بزن جلاد، شاگرد جلادها، سربازها، نگهبانها و تمام کسانی که برای تماشا یه مراسم اومده بودن در یه چشم هم زدن از پا در اومد در این میون فقط یه نفر تونست خودش از معرکه نجات بده و فورا خودش رو به پادشاه برسونه و ماجرا رو برش تعریف کنه پادشاه با خودش بکرده آه این مرد تمام رعایه منو میکشه چطور میتونم از شرش راحت بشم بعد فرستاده ای رو نزد پیکیو ازام کرد تا از اون خواهش کنه به قصر پادشاه بیاد پیکیو هم پذیرفت و نزد پادشاه اومد و پادشاه به اون گفت ای مرد من به فرمانده شجاعی مثل تو نیاز دارم که دشمنانم رو نابود کنه ارباب پیکیو آیا تو حاضر این کار رو بکنی؟ من چند کشتی و یه سپاه در اختیارت میذارم هرچه به دست آوردی مال خودت اگه بخوای میتونی زنت رو هم با خودت ببری پیکیو جواب داد آ من خدمتگزار خوبی برای جناب پادشاه هستم و اوامر پادشاه رو اطاعت میکنم فقط فقط پادشاه با تحجب پرسید فقط چی عرباب پیکیو؟ پیکیو گفت فقط فقط اجازه نده زنم همراه من بیاد اون اینجا بمونه من راحت و بدین این ترتیب پیکیو با چماغ جادویش عازم سفر شد و خوشبختانه هنوز هم برنگشته افسانه اندلسی چماق پیکیو رو شنیدید این افسانه رو از کتاب قصه ها و افسانه های اسپانیا براتون انتخاب کرده بودیم اثر مینسو سویه با ترجمه ای از حسن صرف گردآوری گرداوری افسانه ها که بخشی از هویت و میراث فرهنگی هر قوم و ملتی است از جمله ضروری ترین و دلنشین ترین کارهای فرهنگیه که جوشگران ملل به ضبط و ثبت و گرداوری اون حمت گواشتند برای پیشگشکران هر ادبیات عامیانه ملل آرزوی موفقیت میکنیم. هزار افسان کار مشترکی بود از نویسنده وسیر زینت صالح راستار بهار گیویان اجرا مهران دوستی سلاوندار راهبه فاری تهیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افسانه دیگر به